بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشندی مهربان. انا ارسلنا نوحاً الى قومهی ان انذر قومت من قبل ان یأسیهم عذاب الیم حقا ما نوزا بسوی قومش فرستادین و گفتیم قوم خود را به پیش از آن که عذاب دردناک به سراغشان آید قال قوم گفت ای قوم من برای شما بین دهنده آشکاری هستم که خدا را پرستش کنید وعزم خالفته ببرهيزيد ومرا إطاعتنا موجيد يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون اگر چنین کنید خدا گناهان را می زد و تا زمان معینی شما را عمر می دهد اما مسلما هنگامی که اجل الهی فرا رسد تاخیر نخواهد داشت اگر می دانستید. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم گفت پربارتگارا من قوم خود را شد برو دعوت کردم اما دعوت من چیز جز پر آرت هست بران خود نیفت دون و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلو اصابعهم فی آذانهم جعلو و من هر زمان آنها را دعوت کردم که ایمان بیاورند و تو آنها را بیا مرزی انگشتان خیش را در گوشها قرار داده و لباس هایشن را برخود پیچیدن و در مخالفت افضا بردیدن و شدیدن استکبار کردن ثم اینی دعوتهم جهارا سپس من آنها را آشکارا دعوت کردن ثم اینی اعلنت لهم و افررت لهم سپس با ایشان هم آشکارا با هم سنهانی و محظمانا اعلام داشتم فقلت استغفر ربكم انهو كان غفارا با ایشان گفتم که اثربارکار خود آمرزش بخواهید بیگو من بای بي بسیار آمرزنده یرسین السما باران هاوی پر برکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد و, و, و, لكم جنات و لكم شما را با اموال و فرزندان فراوان امداد کند و با هاوی سبتاب و نحف جاری در اختیار تن قرار دهد ما لكم لا لله وقارا چرا شما برای خدا عظمت قایل نیستید. واقد خلقكم اقطارا در حالی که شما را در مراحل مختلف آفریده است. ترامت وان کیف خلق الله سبع سماوات طباق آیا یا نمیبینید چگونه خداوند هر آسمان را یکی بار دیگری آفریده؟ و جعل القمر نور و, جعل و در میان آسمان ها موجی روشنایی و خورشید را چراغ فروتنی قرار داد. والله انبتكم من الارض نباتا و خداوند شما را همچون گیاهی از زمین رویانید ثم یویدكم فیها وخرجم اخراجا سپس شما را به همان زمین باز میگرداند و باز دیگر شما را خارج میسازد وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَغْضَ و وَخُدَبَانْ زمین را برای شما فرش گفتردهی قرار دار اِتَسْلُكُوا مِنْ هَا تُهُلًا تا از وسیع و درهاوی انبکسری قال نوح رب این هم عطونی من لم یزده ماله و ولده ایلا خطارا نوح ارکر پدردارا انها نافرمانی من کردند و از کتان پیروی نمودند که انبال و فرزندانشان چیز کاری بر آنها نیزدوده ومتعوا مكرا كبارا ومكر عظيم بكار بردان وقالوا لا تدعون آلهتكم ولا تدعون وزدا ولا با گفتند و گفتند دست از خدایان و بطهای خود بر ندارید مخصوصا بطهای وجد و سوا، و یغوس و یعو و نفس رادها نکنید و و به تحقیق آنها گروه بسیاری را گمراه کردند. خدا بندا زال منزا جوز درولت ما عصم و فلم لهم من دون الله همه بخاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ قرار گشتند و جس خدا یا برای نی برای خود نیافتند. و لا تذرع على الأرض من الكافرين ديارا. نهکاف، ترباد کارا. روی زمین، را تن دمکو إن تزولهم ولا چرا که اگر آنها را بگذاری، بندگان از را گمراه می و جز نسل فاجر و کافر بوجود نمی آباران. رب فری ولی والدن یا ولی من دخل بیتی مؤمنا و المؤمنین والمؤمنات و لا تزیده والدین ایلا تباو پر مرا بیامور و همچنین پدر با مادرم و تمام کسانی را که با ایمان بارد خانه من شدند و جمیع مردان و زنان با ایمان را و ظالمان را جز حلاکت می